پرسیدن محتوای مراسم مذهبی میلاد بیت علیه مسلم باید چه محتوایی باشه؟ میلاد؟ بله قردی رید که خدای مطالبه انسان ها هدایتگری داد به نام امام این امام هنوز به دنیا نیمده بود. حالا آمده من باید مقدمش خیلی بدانیم حالای که بزرگ شده خدا به شرایطی امامت داده ما تقدیر کنیم استفاده کنیم و گوش بدیم استفاده کنیم این باید در مراسمه جشن های میلاد زنده بشه این حرف بله. هدف اینه بله. گفتن تو این جلسات هم مناسب هست که حال شادی وجود داشته باشه و اگه هست؟ بله. اساس شادیه بله. منطق شادی تو جوریه و شادیه ایناس بزره بکوب کرد. یه وقت نه. دل اینسان خوش به اینکه خدا یه همشه اینسانی این رو ساخت و در اختیار ما قرار داد که ما رو هدایت کن و تربیت کنه. این خوشحالی چون آخه این شادی رو اهل معرفت راحت متوجه میشن گفتن تو مراسم به چه صورت این شادی بروز یاد بدن اونام اینجوری کف زدن خالی و سود و سینا فایده نداره. پاید گوش به حرمشو بده استفاده کنی از امامتشون هدف اینه ولی بله. وظیفه سخنران و مدده در این مجالس رو پرسیده بودن که اینه ولی مادی بایدی حرفاره بزنن و دو... دعوت کنن مردم که حال استقبال کنیم استقبال عملی گوش بحرفش بدیم تا اون نتیجهی که از امامتیشون در نظر بوده در ما تحقق بدا کنه